فصل نوزده هم شیگه آقای ایواتاک را خواند فکر کرد هرچه هم پیشاید نباید کاری کند تا روحیه یاسوک از دست برود نباید کاری شود که میله به زندگی را از دست بدهد علاوه بر اینکه هر روز ضعیفتر می روشی هم برای معالج وجود نداشت بنابراین چاره ای نبود جز اینکه با تغذیه و روحیه زنده بماند این مرز بین بودن و نبودن بود با توجه به حرف های همسرش شیگکو یاسوکو صبح روز بستری شدن در بیمارستان کوئیشیکی برای معاینه به دو پزشک در روستای که مراجعه کرد از هر دوی آنها هم دارو گرفت که بدون دست زدن بهشان آنها را توی کانال آب انداخت زن خرابار فروشی واقع در پایین شیب نام و تاریخ نوشته شده روی پاکت های دارو را دید. داخل آن را هم بررسی کرد و به شیگه کو گفت بیشک یاسوکو به هیچ کدام از آنها دست نزده. شیگه ماتسو راه خروج یاسوکو را از این سرگردانی فهمید. یاسوکو میبایست روحیه جنگنده آقای ایواتاکه با بیماری را سرمشق خود قرار میداد. آقای ایواتاکه در ایواتاک زمان ترخیص از بیمارستان نیروی زمینی در شبارا را این طور شهر داده شاید به خاطر پاک شدن کرمک های توی گوشم درد آن و طبم از بین رفت اما با گذشت روزها زعفم بیشتر می شد این خودباوری که می توانم زنده بمانم و این اعتماد به نفس که نمی میرم داشت به تدریج رنگ می باخت اما حالا و اینجا و با این بیماری نمی‌خواستم بمیرم. به این فکر می‌کردم که می‌خواهم جایی غیر از اینجا و به دست بیماری بمیرم که شناخته شده باشد. روز بیست و سوم ماه اوت، وقتی کسانی که اعتماد به نفس برگشت به خانه هاشان را که چندان دور نبود به دست آوردند و اجازه پیدا کردند به خانه برگردند، من اعتماد به نفس نداشتم ولی میخواستم برگردم. از فوجیتا رئیس بیمارستان اجازه گرفتم و گواهی رفع فراخان فوقلاده به خدمت را هم دریافت کردم. تا توکیو که غیر ممکن بود اما دست کم روحیه رسیدن به درمانگاه حسوگاوا در روستای یودا را در خود به وجود آوردم. برای پیمودن فاصله ده فرسخی خارج از شهر فوکویاما. کامیونی زغالسوز کرایه کردیم. با پیراهن سفید کلاه نظامی سرم گذاشتم و با تلاش توانستم به بیمارستانی در شهرک فوچو برسم. جاده پردانداز و خیلی ترسناک بود. شدت خرابی این جاده بیانگر چه بود؟ کسی باید به این وضع توجه می کرد. روی صندلی کمکراننده کامیون هوا بسیار گرم بود. چند بار دوچار هزیان شدم. همسرم هم که همراه و کنارم بود به علت خستگی نزدیک بود دوبار بیهوش شود. مسافت سه ساعته به اندازه یک سال گذشت. دو راهی تقدیر مرگ و زندگی درست به اندازه سر سوزنی تفاوت داشتند. از روز بعد یعنی روز بیست و چهارم نشانه های بیماری اطومی ظاهر شد. اگر یک روز یا نصف روز زودتر آمده بود بیشک باد نابودی در شبارا بر من وزیده بود در حالتی که نیمی از هوشیاری خود را از دست داده بودم از بیمارستان فوچو به درمانگاه حسگاوا منتقل شدم تزریق خون تزریق تزریق تزریق اینها را به یاد دارم کمی یاریم بهتر شد هر روز چهل درجه تب گلبول های سفید خون دو هزار واحد کم کم گوشت از بین رفت و تبدیل به استخوان شدم به اسکلتی زنده سوختگی مچ دست و دور گوش به کنار سوختگی پشتم بسیار درد می کرد. حتی با همین پوست استخوان هم درد را احساس می کردم. همسرم میگفت رد سوختگی پشتم درست مثل استیک گوشت سیاه و سفت شده وقتی این سوختگی از پشتم کنده شد در گودی ایجاد شده ستون فقراتم ظاهر شد اگر بخواهم از دید پزشکی بگویم دچار قانقاریا شده بودم هنگام پیکادون نور به صورت مورب به این قسمت تابید و عمقش اینقدر شد شاید علت آن مدتی طولانی در بستر ماندن و ارتباطش با رگی خونی بود. شاید هم گردش خون دچار اختلال شده و این وضعیت بیش از حد لازم به همان صورت باقی مانده بود. نهایت زعف به من دستد. چندین بار نزدیک بود هوش و حواسم را از کف بدهم. از دست رفتن زربان قلب، بند آمدن تنفس، به وجود آمدن زخم بستر بزرگی در کمر و کند شدن قشای مخاطی مسانه و مسدود شدن مجاری ادرار، در همه این مشکلات، جز برادر زنم کسی دیگر برای کمک درمانی نبود. پزشکانی که برای تشخیص بیماریم آمدند، همه قطع امید کردند. موهای سرم و پوست آن مانند کلاهگیست شد و سرانجام همه موهایم ری. آخرین باری که کمی به خود مسلط شدم، خطاب به همسرم وسیعت کردم، اما نجات پیدا کردم. وقتی دوباره حواسم متوجه همسرم شد که کنار بالشم با گریه فریاد میزد. به خودم گفتم اکنون دیگر زمان ایستادن قلبم است، ولی ظاهراً پوست صورتم منقبض شد. مردمک چشمانم بالا آمد، یراغان شکر، و آثار درد شدید در من دیده شد. هرچند خودم این احساس را داشتم که در جایی وسیع و به نسبت روشن شناور هستم. مخصوصا درد و رنج را به هیچ وجه احساس نمیکردم. اصطلاحی به نام زجر جان دادن وجود دارد. اما من فکر می کنم خلاف تصور عموم جان دادن کاری بسیار لذت بخش است. شاید انسانهای دیگر فقط زجرش را می بینند. دو هفته بعد از بروز بیماری اتمی فقط با هورد کشیدن پوره هلو که گاه در روز تا هم می شدند زنده ماندم شاید تزریق ویتامین سی و تزریق خون هم مفید واقع شده باشد بعد از آن یک سال و نیم زمان لازم بود تا اثر زخم ناشی از چیزی مثل پرتو نامرئی به تدریج بهبود یابد. هنگامی که به علت بیماری در بستر بودم، تبدیل به اسکلتی زنده شده بودم. اما این حالت مانند اسکلت فلزی ساختمان چارچوبی برای ساختمان بود، زیرا بعد از آن گوشتی تازه روی استخوانها آمد و بدنم جوان شد. انگار دوباره متولد شدم. اکنون فقط لاله یکی از گوش خورده شده است. وقتی ساکه می نوشم، رد زخم مچ است و گونهام قرمز می شود. به جز صدای سوت سمج گوشم، بیماری تأثیر دیگری نداشته. فقط سوت گوشم شب و روز بیوقفه مثل تنین ناقوس معبدی در دور دست صدام. خودم آن را صدایی میدانم مثل ناقوسی علیه بمب اتمی. وقتی شگ کمی خواست به عیادت یاسوکو برود گفت یادداشتها را میبرد تا برای دکتر مرجعی در درمان باشد. به زمان اندوه و غم کار و گرفتاری عکس چیزی که هست باعث کمک می شود. ماتسو با عجله درها را بست و برای دیدن وضعیت رشد بچه ماهی ها پیش آقای آ یاشی رفت آقای آساجیرو رو که قد بلندی داشت در هاون بزرگی کلم ها را می کوبید. آقای آتسویاشی که پایش میلنگید با تور دستداری بچه ماهی های کپور را از استخر تخمگیری می آنها را جدا و به استخر کناری منتقل می کرد وقتی شیگه ماتسو گفت گرم است نه؟ هر دو نفر جواب دادند بله گرم است جملات احوالپرسی پرسی در آن روز تا در روزهایی که هوا صاف بود گرم است نه و در اصر به نظر خسته می بود وقتی هم باران می بارید با گفتن عجب رطوبت عالیی با هم احوال پرسی می کردند ماتسو به آقای رو در کوبیدن هاون بزرگ کمک کرد کلم را که کوبیدند کمی جگر سیاه به آن افزوده و باز هم شروع به کوبیدن کردند بعد پودر شفیره حشرات و آرد گندم به آن افزودند خمیر حاصله را به صورت گلوله هایی و در استخر نوزادگیری انداختند. دقیقا شبیه تومه ماهی گیری شده. شیگه ماتسو گفت ظاهرا تومه های این داره تعم شور دل ماهی را هم دارند. چطور است به این خمیر آن تعم را هم بیفزاییم؟ نه، نباید این کار را کرد. آقای آساجیرو گفت اگر آن تعم شور را اضافه کنیم، ماهی ها تحریک می شوند. باید ماهی ها را آهسته آهسته پرورش داد. آقای آساجی را به خاطر سرایت بیماری اتمی به چشمانش عینک زرد میزد. آقای آتسویاشی از خیلی وقت پیش سویل گذاشته بود. با توجه به اینکه از هر دو شکم تخم حدود 80 درصدشان می‌مردند و هر شکم حدود 25 هزار تخم داشت، پس تعداد بچه ماهی های کپور در استخر تخم ده هزار قطعه برآورد شد. بزرگیشان هنوز تا اندازه‌ای شده بود که فقط به چشمی آمدند. در این مرحله آنها را کگو گویند. دو ماه بعد تولد پشتشان آبی می شود و حدود 6 سانتی متر رشد می کنند که به آنها آاوکو گفته می شود. در این مرحله در استخر پرورش ماهی رها می شوند. درست یک سال یا نزدیک به یک سال بعد به آنها شینکو و به آن تعدادی که برای خوردن پرورش یافتهاند گیریگوی میگویند استخر پرورشی که آوکوها در آن رها میشوند از بیست روز قبل با سه مرحله آماده میشود آب آن را کاملا خشک میکنند احشای داخلی ماهی مواد غذایی زاید سرگین و غیر داخل آن می ریزند. علف تخمیر شده هم اضافه می کنند. بعد از اینکه این مواد با حرارت خورشید تجزیه و متلاشی شد، در آن آب می ریزند. آقای آساجی و آقای آتسویاشی می گویند که برای اجرای این کار، روش بسیار عالی را در ترکیب آب با مواد داخل استخر به کار بردند. از نهری کوچک آب گرفتند تا استخر پرورش ماهی آب جاری داشته باشد. هر روز پنج، تا شش ساعت آب را خیلی آرام و محدود داخل استخر جاری می کنند. طبق برنامه آقای آساجی رو که گوها در طول پاییز از چهل گرم به هشتاد گرم و سال بعد به بیش از یک کیلو دویست گرم می رسند که موقع سیدان آنهاست بعد از آن در استخر بزرگ واقع در کوه پایه کوه آکی هم رها می شوند. این بار روی کپورها سرمایه گذاری کرده بودند. پس اگر برای ماهیگیری هم میرفتند، بیوه آبیار دیگر نمی حرف اضافه ای بزند. اما مسئله این بود که از میان ده هزار کگو سرانجام چند درصد به آوکو تبدیل می شدند. آقای آساجیرو و آقای آتسویاشی در پرورش ماهی کپور در آب جاری مبتدی بودند، پس رقم پنج درصد هم قابل قبول بود. برای نوزادگیری، هرچند مطابق فصل کمی دیر شده بود، اما اگر دمای هوا مناسب بود حتی حالا هم با قضا دادن میشد کاری کرد. وقتی شیگ ماتسو به خانه برگشت به تقویمی با نام تامارکی نگاه کرد که کاتاتای گاکو آن را استخراج کرده بود. در تقویم قدیم آن روز روز هفته هم از ماه ششم سال بود. زمانی است که برای پاشیدن بزر ترب، عبوبات، کلم چینی و غیره در زمینی که هویج و سیفیجات در آن کشت میشد بسیار مناسب بود. اینها آموزههای بسیار مهمی بود که بر اساس تجربه های کشاورزان و استفاده از روزهای گرم ماه سپتامبر به دست آمده بود. شاید به همین علت برای پرورش بچه ماهی کپور هم مناسب به نظر میآمد. در تقویم جدید، سه روز بعد آن یعنی ششم اوت، سال روز بمباران اتمی هیروشیما و نهم ماه اوت، سال روز بمباران اتمی ناگاساکی بود. بله، سه روز دیگر باید عجله کنم. شیگه ماتسو تنها شام خورد. بعد که مشغول رونویسی یادداشت‌های بمباران اتمی شد، شیگهکو با آخرین اتوبوس برگشت. دیر کردی. یادداشت‌های آقای ایباتاکه را برگرداندی؟ وقتی شیگه ماتسو این را پرسید، شیگکو آن را روی لبه میز گذاشت. هول را برداشت و در حالی که عرق روی سینه‌اش را پاک می کرد گفت رئیس بیمارستان یادشت آقای ایواتاکی را در حضور خودم خواند در حالی که می به شدت احساساتی شده بود با این حساب درباره راه درمان چه گفت این خیلی مهم است وسط خاندن دوبار گفت به آن رجوع خواهد کرد بعد هم وقتی خاندنش تمام شد گفت خودش هم به عنوان فراخان تنبیهی به واحد نظامی شماره دوی هیراشی وارد شده است در همان روزی که آقای ایواتاکه برتش پیوستند و به همان واحد نظامی وارد شدند اما رئیس بیمارستان که زنده است روزی که وارد درتش شد آزمون بدنی داد و روز بعد به خانهش برگردانده شد. آن زمان به علت پوکی و ها کمربند محافظ ستون فقرات زیر شکمش بسته بود. دوراهی خوششانسی و بد بیاری چیز قریبی است. رئیس چهره در هم کشید و در حالی که آن را میخواند ناگهان نفسش را فرو خورد شاید آب دهانش را گرد داد. مرحله قبل از ترکیدن بکس شیگکو به تفصیل درباره وضعیت بیماری یاسوکو صحبت کرد. دو ساعت بعد شام خوردن به او خون و رینگر تزریخ شد و او به خوابی امیق و آرام فرو رفت. فردای آن روز شیگه ماتسو رو نویس یاد های بمباران اتمی را تمام کرد.